بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما در علم خدا بود در رابطه با علم خدا باید این نکته رو بگیم که از آنجا که ذات عقدس اله حقیقتی است مجرد از ماده لذا نقص و عیب ماده و مادیات را ندارد فلذا محدود به زمان و مکان نیست چون ذاتش مجرد است آری از هر تغییر، زوال و تدریج است همواره ثابت چون مجرد بنابراین بر اساس ذاتش چون علم را تعریف کردیم حضور معلوم نزد عالم، اگر معلومات نزد ذاتش معلوم باشن این زمان بردار نیست این همان مرتبه از علم خدا است که در اوصاف علم عرض کردیم کان الله ربن ازلام معلومه کان الله عالمن معلومه او عالم بود زمانی که هیچ معلوم و مخلوقی هنوز خلق این به این است که همه حقایق چه صور علمیشون چه صور علمی نزد حضرت حقش هستند حاضر هستند و تعریف علم هم یعنی معلوم بودن حاضر بودن معلوم نزده عالم او تعریف علم این نوع از علم خدا اولا تغییر ندارد زمان ندارد ثانیان از کیفیتش خبر نداریم. ما نمیدانیم علم خداوند در مرتبه زاتش به چه شکلیست کمما اینکه ما اقرار در عالم زر رو هم نمیدانیم قال بلا گفته این الله لاکن به چه کیفیتی نمیدونیم اینها کیفیتش برای ما مجهوله اما حقیقتش مسلمه پس خداوند به حسب ذاتش بر همه حقایق اما از علمی و عینی علم دارد و این علم زمان بردار نیست اما یه مرتبه دیگه برای علم خدا وجود داره و این مرتبه از علم خداوند علم زمان داره آیاتی رو در قرآن خوندیم از جمله این آیه شریفه حضرت حق می نکن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَمَا آزمایش میکنیم حتی نعلم تا بدانیم المجاهدین اهل جهاد منکم جهادگران از شما را که این چن چنین صفت دارن و سابرین شکیبا هم هستن نیروهای جهادگر شکیبات ما این روحا اینجا علم خداوند در واقع زمان داره زمانش متعلق به کیه بعد از جنگ بعد از آزمایشه آزمایشه دون بکنیم تا این بدونیم پس مادامی که آزمایش اتفاق نیرفتاده باشه و اصلاف ظاهر خدا آن علم نداره. این علم زماندار این چیه؟ این منافع داره با اون چی که تا, تا گفتیم؟ نه. به برای خدا دو مرتبه از علم رو قائلن. میگن گاه. علم علم صفات است برای ذات خدا که چون ذاتش مجرد عن المات ده این نحوه از علم زمان نداره اما یه موقس علم صفت است برای فعل خدا صفت ذات نیست صفت فعله صفت اون کاری که در انجام میده آنگاه این فعل چون تعلق دو سو داره دیگه یک سویه فعل الهی ذات خداست که فاعله یک سویه فعل الهی متعلق فعله که متعلق فعل کیه؟ مخلوقات هستن، ممکنات هستن. خدا بخواد بنده و شما خلق کنه. خدا بخواد بنده و شما رو بیازماید. خب بنده و شما خصوصیتمون چیه؟ ممکنال وجود هستیم. یک وقتی ممکنال وجود شدیم، دارای محدودیت زمان و مکان میشیم. در یک برهه از زمان نبودیم. در دنیا و در یک برهی از زمان هم نخواهیم ماند در دنیا در یک مکانی هستین و در مکان دیگر نیستین اینش بگه محدودیت زمانی و مکانی شما اگر مثلا فرض کن 20 سالت باشی 21 سال پیش نبودی اگه بناس 70 سال عم بکنی 71 سال بعد بله نخواهی بود اینش بگه محدودیت زمانی این از خسیصه های ممکنات خب فعل خداوند از یک طرف چون خدا فاعل است به او تعلق داره و از یک طرف چون به مخلوقاتش تعلق میگیره مخلوقاتش چی هستند ممکن الوجود هستند درسته یکی از خصایص ممکن الوجود این است که محدودیت زمان و مکان داره خب از این جهت که عقل رابطه بین فائل و اون حقیقتی که فعل قرار است بر اون واقع بشود را میسنجد و اون حقیقت یک حقیقت زمان بردار است میتوان گفت که علم خدا در این مرتبه دارای چه خواهد بود چرا؟ چون علم خدا باید تعلق بگیرد به اون فعل و اون فعل تا انجام نشود معنا نداره که بگیم خدا نسبت به اون علم داره یا نه خدا باید یه چیزی را بشنود تا سخنی گفته نشود علمی بهش وجود ندارد اینجا دوتا خصیصه هست اینو دقت بکنید. فکر برم واضح شد خیلی سائن بوده باشه ببینید از جهتی که خودش فائل از زمان نداره از جهتی که علمش تعلق گرفته به ممکنات ممکنات زمان بردار هستند و فعل روی ممکنات اتفاق میفته و علم خداوند به فعلی که روی ممکنات اتفاق میفته بنابراین تابع چیه زمانه که اون ممکن در واقع تحقق پیدا میکنه چرا چون علم زمانی که میخواهد صفت فعل خدا بشود باید این باشد که اون فعل نزد خداوند چی بشه؟ حاضر بشه و حضور شی نزد خداوند همون علم خداوند مطقا اون فعل چون روی بنده و شماست و بنده و شما زمانی هستیم تابع چه خواهد شد؟ چرا؟ چون علم خدا به اون حقیقت نیست به اون فعل است، میخواد اون فعل رو بشت... ببینن علم خدا به اون فعل باید تعلق بگیره خب اون فعل هم که هنوز تحققی پیدا نکرده خب خدا قبل از این که آدم رو خلق نمی نمیتوان میگیم علم خدا به آدم علیه السلام به خلقت آدم علیه السلام چرا؟ چون خلقش نکرده که علم خدا به آدم علیه السلام همیشه هست ولی علم خدا به خلقت آدم تابل چیه؟ این که خلقش کنه فکر کنم واضح شد دیگه نشد؟ فکر می کنم شد دیگه حالا هر کاری هم بکنه دیگه از این آسان نمیشه ولی خیلی آسونش کردم علم به آدم همیشه هست اما علم افعال آدم تابه است که آدم اون فعل رو انجام بدهد و اون فعل در آدم علیه السلام توبه چیه یک زمانه بنابر این اگر لغزش را بخواهد ببینید اصل لغزش نه فعل لغزش آیه که گفتم شلیدن اون تو گوش تو باشه تا بگم این اصل فیل تا تحقق پیدا نکنه در حضور حضرت حق نمیتونه اصلا بحث بکنیم که خدا آیا علم دارد یا علم نه. نداره حالا این نکته توجه بکنید ببین آقا با وقتی می‌خوایم یک چیزی رو بشنویم شنیدن دو تا موضوع داره دو تا رخدن داره رخدن اول یکی شنیدن بهش بگید سماع درسته من داشتم استماع میکردم یعنی داشتم چی کار میکردم؟ نیشه یکی هم اون مسموعه اون چیزیست که من چی آقا؟ میکردم. در استماع فرمایشات شما هیچی دستم نیامد اون هیچیه که دستم نیامده شده چی؟ مسموع یا حالا یه فر... مثال دیگه بزنیم که خودمون مثاله که زدیم خودش فلسفی شد پس ما یک شنیدن داریم بهش بگن سمع یه مسموع داریم اون که شما دارید میگید درست شد اون مسموع شما مثلا ممکنه بگه آهل بارون میاد، خب اون مسموع شماست ولی یک سمع هم داریم یعنی شنیدن حالا علم خداون همواره به مسموعات هست این علم علم ذاتیه اما علم به شنیدن چی؟ شنیدن یه فعله باید شما یه گفتگوی بکنید تا اون شنیدنه نزد من چی بشه؟ حاضر بشه تا علم من به اون شنیدنه به اتفاق در واقع بگیره فکر بیکنم دیگه خیلی واضح شد پس ما یک دیدن داریم بنام نام نظر یه دیده شده داریم به نام منظور اون دیده شده همواره در علم خدا هست اما اون دیده شده که من بخوام بهش علم پیدا کنم من میخوام به فعل دیده شده علم پیدا کنم یعنی باید یه اتفاقی بیفته تا دیدن اتفاق بیفته علم خدا به دیدن تابع زمانه چون هنوز شما را خلق نکرده است تا دیده شوی اما دیده شده همواره نزد خداوند هست اونی که همواره نزد خداوند هست علم ذات اله هست اون چیزی که در پی فعل و انفعالات مخلوقات مرآ و منظر حزت، معلوم و حضرت حق می شود، اون میشه علم در واقع فعلی حضرت حق که صفت فعل خدا میشه خیلی واضح شد پس یه موقع این فعل شماست که باید تحقق پیدا بکنن که اگر تحقق پیدا کرد معلوم نظر حضرت حق میشه آنگاه حضرت حق بهش علم پیدا میکنه و میگن دانست شما باید یک جنگی را انجام بدهید یک جنگی باید اتفاق بیفته تا من ببینم که صبر شما تحقق پیدا کرده اون تعلق علم من به صبر شما منوت است به اینکه این صبر در یک آزمایشی در واقع تحقق پیدا بکنه ممکن هم هست شما در واقع صبر نکنید و فرار بکنید اما اینکه شما از صابران هستید یا نیستید همواره نزد خداوند معلومه چون اون علم به ذات خداست علم ذات حضرت حقه ولی اینکه که من جز اصابران هستم یا نه این جز اصابران بودن و خدا بهش علم پیدا بکنه لازمه این که زمانش برسه اصلا تمام آزمایش هاته الهی هم همینه و زمانش برسه برابری دو مرتبه از صفات حضرت دو مرتبه از مراتب علم عزت. حقه رو چیکار کردین؟ بیان کردیم به واضح به سادگی حالا این گوش بفر به تا ببینیم که چی میشه تا مرتبه سوم علم خدا رو بیدیم در اینو نفهمیدیم مرتبه سومش هم هست پس صورت مسئله این شد که خداوند با این که یک حقیقت مجرد انل ماده هست و در او زمان راه نداره مکان راه نداره وقتی به آیات قرآن مراجعه بکنیم میبینیم بخشی از علم خداوند چیه زمان برداره که این آیات رو در جلسه گذشته خاندم الانم یکی به گفتم رو گفتم قابل چجوری باید حلش بکنیم این رو بینیم شک حلش بکنیم و عرض بکنیم که علم خداوند امریست زمراتب صاحب مراتبه یک مرتبه صفت ذات که عین ذات است زمان ندارد و تغییر ناپذیره. این مرتبه علم خداست گاهی علم خداوند یعنی علم وصف ذات خداست این یک میگیم ذات خدا داناست و چون صفات عین ذات هستند و زاد مجرد از ماده است و ماده ای که از لوازمش زمان است و این زاد مجرد از زمان است علم در اون مرتبه مجرد از چه خواهد بود؟ زمان خواهد بود این همان است که حضرت حق فرمود کان الله آلمان ازلام معلومه. زمان که هیچ مخلوقی نبود علم خدا و اون مخلوق بود به صورت علمی یک. اما گاه علمی که از مقام فعل می شود مراد است یک مرتبه مقام ذات است یک مرتبه مقام فعل است فعل تابع این است که یه چیزی انجام تحقق پیدا بکند وقتی تحقق پیدا کرد نزد خداوند حاضر می شود و علم خداوند به او تعلق پیدا می کند درست شو؟ خب منطقه وقتی بخواد اون فعل تحقق پیدا بکنه یعنی قبلا نبوده حالا هستش این یعنی که اون حقیقت حقیقت چی؟ زمان بردار وقتی میگیم علم خدا زمان دارد یعنی این که باید صبر کنیم فعل تحقق پیدا بکند این تحقق نزد خدا معلوم بشود و این نقص برای خدا نیست این به خاطر این که ما موجوداته چی هستیم؟ محدودی هستیم بعد فرق یه فرقش در این است که گاهی ما شنیدن داریم گاهی شنیده شده شنیده شده همیشه برای خدا هست اما اگه بخواد شنیدن اتفاق بیفته تا به اینکه شما یک کلامی بگید این کلام رو که گفتی نزد خدا تحقق پیدا میکنه و خداوند به اون گفتن شما علم پیدا می کند باید یک جنگی اتفاق می افته. این جنگی اتفاق می شما صبوری و خیشتنداری بکنید یعنی واقع می شود از شما خیشتنداری لذا این خیشتنداری شما نزد خداوند تحقق پیدا می کند و علم خدا به او تعلق پیدا می کند و این تابع چی ها؟ زمانه در اون زمان خوشی که صبوری معنا نداره که زمان خوشی چی معنا داره؟ بله؟ البته شما ها زیاد شنیدید که میگن ما در مقام آسایش باید شوق بکنیم و در مقام زرارا باید چه بکنیم این درسته این معنامه ازای شما؟ حالا من خواستم این منشه فکر بشه که با اگر آسایش داشتیم شکر می‌کنیم و اگر مثلا فرض بفرمایید که سختی داشتیم شکر نمی خدا رو با صبر می کنید فکر کنید آخه نمیشه تغییر پیدا کنید شکل با در همه اوالات باشه الامنالله الامنالله کل حال چه سختی و چه آسایش منطقه خب به طور قلط به ما گفتن در آسایش خدا رو شکل میکنیم در سختی هم مثلا فضل خود سبوری میکنیم آره؟ <تصفح> مردی هم تای چا خدا رو شک کن هم زریز میز عزت و پادشاهی این مردان گیز هم در گودی قتلگاه میگرزن به قضا ایک هم از زمانی که عبدیمه داره خارج میشه ولی روزای خوشی که همه دارن این کار رو انجام میده چه؟ فاضلتی برای انسانه این همه حیوانات هم همین کار میکنه اسخون بذاری جلوش میخوره نظر رو سرپ میکنه چیکار بکنه یه دومی هم تکومی میده وقتی خوده خب. مو که از اونا برتری که بنابراین مقام صبر مقام است که به همگان نمیدن جز ارکان تشکیل دهنده چیه ایمان نمیشه گاهی باشه گاهی نباشه که گاهی باشه گاهی نباشه یعنی گاهی مالشون ما هست گاهی شما ایمان پس حواست جمع باشه وقتی به با من جواب بدی با توجه به اون که ما عرض کردیم باشد خب علم که از مقام فعل انتظام می شود برای چنین علم به لحاظ متعلقش که زمانیست می توان قید زمان آورد چون علم خداوند به از مقام فعلش در انتظام میشه یک و این انتظار کار عقل دو و این تعلق فعل به مخلوقات سه مخلوقات ممکن هستند و محدود چهار حد زمانی دارند پنج پس علم خداوند به خاطر تحقق اون فعل زمانی نزد خودش در چه زمانی آدم علیه السلام خطا کرد در ازل که نکرد که در زمان وصف این کار کرد خب برای اینکه خطا خطای آدم علیه السلام تحقق پیدا بکند نیازمند به چی بود؟ زمان بود اما این آدم خطا میکند از ازل برایش معلوم بود قبل از اینکه خلقش بکنه ولی یه موقع هست که این خطا باید بروز پیدا بکنه تحقق پیدا بکنه فعلیت پیدا بکنه اینیت پیدا بکنه این تابه چیه؟ تابه؟ زمانه مسموع بنده و شما را خدا میداند اما اگه بخواد شنیدنش را ال پیدا بکند لازم است اینکه که شما را خلق بکنه، بنده را خلق بکنه، بنده و شما مواجه با هم بشیم شما حرفی بزنید به من بشتم علم به شنیدن تابع چیه زمانه اما اون مسموع رو از ازل میداند فکر بیکنم دیگه واضح شد دیگه بله؟ بس این دو مرتبه علم خدا اما یه مرتبه سومی هم دارد علم خدا و اون مرتبه سوم این است که هستالی میگید به اینکه علم خدا در کتاب علم در کتاب مرتبه سوم علم خدا است من به جهت بیان راحتی که در این اخیر گفتم نسبت به علم زمانی که صفت فعل کلی در حقم دعا بکنید به جهت که شاید بسنم چهه دقیقه بحث فلسفی رو من رها کردم این انایتی که خدا کرد به همه ما که شما متوجه معنا شدید من دیگه نخونم اون مطموع بسه دو دیگه، حالا علم در کتاب چیه، مرتبه سبومه علم خداست، خدا علم زمانی که صفت فعل باشه دیگه باید متوجه شده باشید دیگه اون فعل و تحقق پیدا بکنه، علم خدا به اون فعل است، نه به اون واقعی که در اون فعل اتفاق میفته اون واقعی که نزدش ازالن و ابدا معلومه ولی میخواد به اون فعل تحقق ب... تا... علم پیدا بکنه اون لازمش کنست که اون فعل تا... تحقق پیدا اون فعل چون مربوطه به بنده و شماست ما ممکنون وجودیم زمان بندی شده هستیم تابع زمان خواهد بود این مهمترین بحث در علم خداست اما مرتبه سوم علم خدا علم حضرت حق یه مرتبه دیگه داره به نام علم در کتاب من یه علم دارم تو ذهنمه. یه علمم دارم نوشتم تو کتاب گاهی بهش دگاه میکنم مطالب رو به شما میگم علم در کتاب خدا همینه یه چیزی نوشته یادش نره یا نوشته برای آیندگان باقی بمونه چیه در کتاب خدا ولی یه مرتبه از علم حضرت حقه آیات قرآن این معنا رو اشاره میکنه دستور مبارکه تاها بیان حضرت حق این است که دارم آیه رو ها، ولی دنبال ذره بینم میگهرم که نیوردم در سوره مبارکه تاها آیه 52 قال علمها ان دربی گفت آگاهی مربوط به آنها نزد پروردگارم هست ان دربی فی کتاب نزد پروردگارم در کتابی که لا یزل ربی ولا ینسی علم خداوند به اونها در یک کتابه که لا یزلست گم نمی شود ولا ینسی فراموش نمی شود این هم یه مرتبه از علم است علمی در کتاب در سوره مبارکه حج آیه هفتاد علم تعلم انالظاه یعلم ما فی و ولعز آیا ندانستی که خدا آن چرا که در آسمان و زمین است میداند چجور میداند؟ داند؟ این نزال کتابن، همه اون مجموعه در یک کتاب است. در سوره مبارکه سه آیه سه لا یعظب عنه مثقال ذرة فی السماوات ولا لافل العرض از خداوند پنهان نیست هیچ چیز هرچند به اندازه سنگینی ثثقال بمعنی مثقال و گرم و این رفا نیست مثقال از ثغل میاد مثقال زرتن یعنی به اندازه سنگینی و اندازه سنگینی سنگینی چیز زرتن و اندازه سنگینی زره زره چیه خدا هر وقت میخواد تو سر آدمی زاد بزنه این دو طور میگه مثقال زرتن زره مکرر گفته شده وقتی از فضای نور به تاریکی نگاه میکنید یک از یک روزنه نگاه میکنه در اون روزنه یه قباری چیه معلقه عرب با اون ذره، زره انقدر بیوزنه که نمیتونه دو زمین باشه دائما در حالت قلیان است حرکت ولی حضرت حق میفرماید که به اندازه یه سنگینی ذره هیچ چیز در آسمان و زمین از او پنان نیست خب ما که یه همچین وضعیتی داریم از علم خدا ما مخفی هستیم ما رو نبیبینیم آقا اینا خیلی آیات عالیه این آیات باید در جان ما بنشیند و در سختی ها به کنار ما بیاد که قرآن کتاب استخاره نیست همینه ای که آدم فکر کنه که از علم خدا پاک شده این که آدم فکر کنه خدا به او نگاه نمیکنه کنه ایده ها چیزا خطرناکی ولی توی این قرآن میگه آشو به اندازه مسقال ذره هم که باشید من دارم در علم من هست لا یعظو با انهو مسقال زرقتن فه السماوات ولا فعل عرض ولا اسخر من منزالک ولا اکبر کوچکتر از این نه و نه همه اش هیچ کدومتون پنهان نیستید نه کمتر از ذره و نه بیشتر از ذره هیچ کدو هم پنهان نیستید کجا مرعکس هستید الا فی کتاب مبین مگر این که در یک کتاب روشن؟ همه چیزی بازه ای اون کتاب دست منه تو بیفته و میفته و میفته و میفته اما چه شکلی میفته سه نقطه بمانم آفرده فید نکن اون کتاب دست منه به آبها و اجدادم دست من نیست ولی آدم اون رو داشته باشه اصلا نفس نفسنی همینه خواب صادقه یعنی همین که شما اتصال به اون کتاب پیدا بکنید بنابراین اینکه سهر خوابی و نزدیک از آن بود و اینا رو اماره میذارید برای رویاه صادقه اینا ها چیه؟ قلطه مادام این که انسان در مقام تحذیب اتصال به اون کتاب پیدا نکرده نمیتواند برای رویاه هایش. چی باشه؟ صدقی قائل باشه به همین صادقی حالا اینکه به من میگه آقا من خواب دیدم بعد من میگه آقا من تعبیر خواب بلد دیستم این من چقدر آدم خوبی هستم یعنی من درم بید میگه آقا من به اون کتابی چه اتصافی ندارم و تو هم خودتون عطتر نکنم چون اخوک هم مثل تو تو من به اون کتاب اتصالی نداری حالا یه خوابی دیدی هر هم امام رضا بودی که شالله اثبتت کن! با معرفت این به واقعیت به پیوندده این درست شد؟ بله عوض بخوام گاهی با افکار سابقتون اینجور در می افتم وظیفه من این است که من جامعه رو بکشونم به یک جایی که دارای یک بینش بشه و نه تبدیل به یک خواب و رویاه امت خواب زده نمیتواند امام زمان علی السلام را دریابد. و در مقام یغزه قرار گرفت. مادامی که خواب من خواب است. خب این خواب الهام از علم خداست. فی کتاب مبین هیچ چیز هرچند به اندازه سنگینی یک ذره باشد از خدا پنهان نیست و نه تنها ذره کوچکتر و بزرگتر از ذره هم در کتاب یا آشکار وجود دارد این معنای آیه سرو مبارکه صده آیه همه چیز در کتاب خداست این تعبیر که علم خدا در یک کتاب است این حرف تولید بیکنه چی علم خدا توی کتابه علم ذاتی خدا که این ذاتش اون مرتبه اول و در کتاب نیست چون ذات غیر کتابه ذات غیر کتابه علم ذاتی خدا در ذات و حضرت حقه ایچ رفت دید در این منا نیست که خود، چیزی تو خدا میزن خدا تغییر ناپذیره، اون که در مرتبه ذات اقدس الهه علم فعلی هم که ام مقام فعل انتصاب میشه تا اون محقق نشود تحققش در نزد خداوند معلوم نشود علمش تعلق نمیگیره پس علم در کتاب چه علمیه اون چیزی که تو کتاب نوشتن علم فعلی نیست علم ذاتی هم نیست خدا می نویسه تا فراموش نکنه می تا چاپش کنه خب یه هم چیزای دیگه باید برای پاسخ این نکته رو بگیم مراد از کتاب مخلوقه وقتی میگه فی کتابن یعنی یه چیزی غیر من و نمیگه اللا فلله در الله نیست علم همه حقائق فی کتابه پس این مرتبه دیگه از علمه که کتاب ذات نیست یه مخلوق یه چیزی خدا خلقش کرده اد در اونه. و این مخلوق بگونه است که نمایانگر همه سرنوشت و مخلوقات دیگر است و هر کس بتواند با آن تماس پیدا بکند و در آن بنگرد از احوال مخلوقات دیگر با خبر بشود سیر انسان به سوی این باید باشه خب حالا علم در کتاب این تا اینجا علم در یک مخلوق اون مخلوق چه خصوصیتی داره ما برای علم خداست مرتبه قاعدی علم ذاتی که علم صفت ذات خداست علم صفات فعل خدا میشه دو که علم وقتی صفت فعل خدا میشه کی انتظایش میکنه عقل انتظام میکنه عقل رابطه خدا رو به اون مخلوق میسنجد ضرب تحققش به هر زمانی که بود اون محقق نزد خداوند معلوم بشود علم خدا بهش تعلق میگیره. تمام شد؟ یه در کتاب میگه کتاب چیه؟ برای اینکه بفهمیم علم در کتاب چیست، باید آیات علم کتاب رو بررسی بکنیم. مشی چیزیه که عقل مخاطب بهش به راحتی برسه. آیاتی که راجع به علم کتاب صحبت میکنه. اولا بگیم کتاب چیه؟ مراد از کتاب چیه تا ما بگیم علم در کتاب چی؟ کتاب به معنای نوشته است. آنجا که شما می نویسید بهش می کتاب حال ما اختلافات در واقع بحث‌های لغوی دقیقی در اینجا رو مطرح نمی کنید. چون البته در بحث تفسیری خیلی به ما کمک می‌کنه. ولی ما فعلا اینجا چون بس تفسیر نداریم پس به نوشته است. اما کار در قرآن چیه؟ گاهی واژه قرآن و گاهی واژه کتاب در قرآن به کار رفته ولی به معنای حکم شرعیه. تکلیم شرعیه. مثلا سوری مبارکه نسایه 103 اِنَّسَلَات به درستی که نماز کانت علال مومنین میبوده باشد برای اهل ایمان کتاب موقوتا یک حکم تف... تکلیفی زمانبندی شده یعنی قضا داره زمان بندی داره کتابا مكتوبا مع م... موقوفا مع اوطاب وقت دار زمان دار اینجا واجی کتاب به کار رفته ولی مراد چیه حکم شرعی یا ایو هلذین آمنو كتب علیکم الصیام یعنی روزه بر شما چیه حکم کتاب معنای لغویش این نوشته شده دفل معنای استعمالیش در قرآن کردیم جا معنا چیه؟ حکم شرعی گاهی حکم شرعی رو بهش میگن چی؟ کتاب گاهی مراده از کتاب کتاب, آسمان کتاب آسمانی است چند کتاب آسمانی داریم؟ صد و چهارده کتاب آسمانی داریم هنجاه تاش بوله حضرت آدم علیه السلام بوده یکیش بوله حضرت خاتمه و بقیه انبیام سلامون لاریم اجمن کتاب های آسمانی داشتن بین الحلالن, بین الحلالن یه توضیح بدم این که چرا کتاب های آسمانی دیگر تحریف شده و قرآن تحریفن شده دلیلش واضحه دلیلش چیه؟ اینکه قرآن معجزه است و کتاب‌های آسمان دیگر معجزه نبوده. بنابراین بنایم برای حفظش میگن اینکه یه عده‌ای به اراده و به اختیار خودشون در سدد افزان بر بیان خب نیامدان. نیامده. کارشم میشه کرد دیگه. سوره مبارکه بقره آیه 213 و انزل ما اهول کتاب بالحق و ناظر کردین با پیامبران کتاب را به حق لیا بین الناس تا که کنن بین مردم اون فیلم اختلف و فیدران شکل اختلاف میکنن یعنی کتاب شرعی منبع رفع اختلافه خدا میگه قرآن کتاب رفع اختلافه بعد ما تو قانون مدنی سنگ میکنیم قرآن شکار کنیم کلن فاصله بگیم بگیم نزاعتمون رو خودمون حل میکنیم قوانین مدنی ما و ببینید که چه کردم من نمیدونم چرا ما برای خدا اینقدر قائل نیستیم یعنی خودمون رو برتر از خدا میدونیم اینم یه چیز خیلی عجیبیه آخا موجودی که نبودی و نخواهی بود تو چه قوتی داری که برای همه عالم بخوای تصمیم و خدایت نتوانه چه این تصمیم گیری کنن این خیلی ظلمه به نظرم به خدا و انزلنا معهمل کتاب و میزان و ناظر کردین با انبیا کتاب را و میزان لیهوم الناس بلغیست و مردم مقصد به عدل بشن این هم کتاب آسمانی مراد بسلم کتاب های آسمانی انزال دیگه بالا آمد پایین یک مورد استعمال دیگه ای هم کتاب داره و اون مورد استعمال شیه به نام نامه اعماله این نامه اعمال و ملائکه بزرگوار خداوند اسمشونو گذاشته کرامن کاتبین نویسندگانی با کرامت و بزرگوار چقدر اونا بزرگوار و ما به اونها مدیونه اونا, اونا و زبت میکنن این کتابی که در روز قیامت به ما میدن نمی انجام نمیگشایندش یارو راحت ولی خودمون داریم انجام میدیم اونام مینویسم به هر صورت هر انسانی کتاب رو داره کل انسانن الزمنا طائرهو فی عنق هر انسانی نامه عملش رو به گردنش وصل کردیم یعنی جدا نمیشه و تخرج له یوم یوملقه کتابا یلقا منشورا در کار... کارنامه هر انسان رو به گردنش وصل کردیم یه چیز کوچولو وسخ این جدا نمیشه ولی روز قیامت اینو بازش میکنم به اندازه 80 سال عمر دوست داری بیست سال بشه عمره چون به اندازه 120 سال بازش میکنه. با تو با پس لحظه به لحظه جواب بدی بعدم بهش بن اقر کتاب کتاب تو بخون این دست قالته تو دنیایی می گفت بخونیم وصی بخونیم. حافظ بخونی. حالا کتاب خود رو بخیم خوش گل می خوونیم اقر کتابک کتاب تو بخون ببین با کف آب نفس کلی گوم حیب کافی خودت از شرمندگی دی فر کجاکاره فایده؟ این برای هر انسانی گذوشتن یک کتاب برای هر اومتی هم گذوشتن آقا وقت این کتاب که برای هر انسانی است از سه جهت با آدما میدن سور موقع که آیات هفت و هشت فا اما اوت یک کتاب ها به یمینه یه یعنی موقع کتاب رو به کتب راستت کتاب را دست راستت میدن یمینه یعنی با یمن و برکت اینا کتابشون شنون فصوفه یوحاسف حساب یسیران یوحاسف حساب یسیران وقتی نامه عمل دست راست آمد ملایکی بودن که باید خواب چیگه داری اینا برو برو برو شنیدیم همه شنیدیم برو حساب یسیران خیلی کم همه در همین سوره مبارکه آیات ده و یازده یه در نامه عملشون از پشت سر میدن و اما منعوت یک کتاب هوورا از احره و کسانی که نامه عملشون از پشت سر میدن فسوفه ید او صبورا اینا به زودی به حلاکت میشه یعنی بی حساب و کتاب فسوفه یدعو سبو را اینا میبینن که به زود به زودی حلاک میشن ندن نامه عمل ما را پشت سر نه کیا هستن که نامه عملشون از پشت سر میدن یه ده هستن نامه عملشون از دست چپ میدن دست سوره مورا که هاق آیات 24 و اما منعوت یک کتابه به شماله و کسانی که نامه عملشون رو به دست چپ میگیرن فگه قول یا لیتنی لم او تا کتابیه ای کاش کسای کتاب ما نمیدادن گندی زدین ما نه ها حساب کتاب دارن این ها حساب کتاب دارن این ها برو اونا که پشت سر بدون حساب کتاب تو هم برو بود تو به هلا کرد این نامی عمل برادر و خواهد این نامی عمل بعد هر امتی هم اینجا گفت و کل انسانن الزمنا تا کارنامه هر انسانی رو ما به گردنش وعث کردیم ولی این معنا هم در قرآن کردیم به سور مبارک جاسی آیات 28-29 هست و کل امتن تدالا کتاب ها هر امتی هم فراخانده میشن به سوی کتاب اون امت یعنی ما یک دفتر داریم که مال فرده دفتر داریم که مول امته گناه های فردی ما رو میریسن گناه های در واقع دینی ما رو هم میریسن که شما هستن قرآن تو جدا بودیم حالا نماز دخوندی روزه نگرفتی اینه یعنی که هیچ شجل از مسلمون نبودیم میاه ما مسلمان بودیم که ما کجور مسلمان بودیم می ما پیغمبر رو شهادت دادیم به رسالتش می شرط مسلمانی اینه با شرط مسلمانی چی ترعیت نداری رفت خب کتاب آسمانی کتاب عمال کتاب خود حکم تشریعی ولی هیچ کدوم اینا علم خدا در اون کتاب مراد نیست اینا هیچ کدومش اون معنی که ما میخواهیم نیست اما اون معنایی که ما ازش بخواهیم اونه است که همه چی دارشه حالا همه چی دارشه این خصوصیاتو رو داره یک کتابی که همه چیز در آن ثبت است سوره مبارکه انعام آیه پنجاب و ولا رتبن ولا یابسن الله فی کتابن هیچ رتبی یابسن نیست مگر این که در کتاب مبین هست این یک کتاب مبین غیر از اللهه این در ذات نیست کتاب مبین مخلوق خداست از کجا میگه مخلوق خداست اگر این کتاب مبین همان ذات و خدا بود باید میفرمود لا رتبن ولا یابس الا فی علم الله الا فی ذات الله ولی اینو نگفته فرموده الا فی کتاب مبین مگه در کتاب منوش غیر از ذاته غیر از اللهه چیز دیگه است مخلوق خداست این یک اما حسنش یکی روح شنه تعابیر مختلفی رجبی این کتاب شده قاه در قرآن کنیم از سون مبارک زخرف آیه چهل میفرمد و انهو فی ام مل کتاب لده اینا لعالی یون حکیم و آن در کتاب اصلی اُمُّل کتاب کتاب اصلی ام منای ریشه این شص نه ده کتاب اصلی است لدائن لا علیه حکیم این کتاب اصلی نزد ماست این نیست هستم قرآن نیست دومین خصوصیتی که کتاب داره دستور مورکه انعام آیه دستور مورکه یونوس آیه شستای که فی کتاب مبین کتاب آشکار و آشکار کننده است اون چی که در این مرتبه از علم خداست آشکار رفشنه مبعم نیست سومین ویژگی که برای این مرتبه از علم خدا بیان میکنن و این دنا کتاب حفیظ سور مبارکی قاف آیه چهار کتابی حفظ کننده یا حفظ شده است نایی سکنونش مراد قرآن نیست همین معنای کتاب الحفیظ دستور مبارک که برج آیات 21 و 22 تکرار شده بله و قرآن المصحف منتها همین قران مجید کجاست پی لوحن محفوظ در یک لوح حفظ شده است یکی از ویژگی های کتاب خدا نهفته بودن و پنهانانه در سوره مبارکه واقع آیات 77-78 این لقران قرآن کریم فی کتاب مکنون پنهان حقیقت قرآن کریم در یک جای دیگه است این تجلیه این تجلیه و یک خصوصیت دیگری که در این کتاب وجود دارد مادر همه کتاب است سوره مبارکه رعد آیه 39 یمه الله مایشا و یثبت و اننده او کتاب پاک میکند و صاف میکند و نزد او مادر همه کتاب هاست در دورت المعارف در خدا نه که دورت المعارف مادر همه کتاب ها که نه. همه چی اونجاست این ویژگی های علم در کتابه این مرتبه از علم خدا چه حقیقتیست الحب